اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح من شر ما خلقه از شر تمام آن که آفریده است و من شر غاسق اذا و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و من شر نفاثاتی و از شر آنها که با افسون در گره ها می دماند. و من شر و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می‌بزند.